حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر بلک هوا دارته چون بلدی بخنیم و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم از که دل سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواک درب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم چطوری؟ خوبین، خوشین، سلامتین، آخر هفته خوش گذشت همه چی خوب بود؟ یک رادیو پس دیگه، یک هفته دیگه آغاز شد با شما ایم پنج و دقیقه آینده رو بر بچه ها چطورن؟ شهرام خوبی؟ مرسی خوبم، همه چی خوب؟, خوب. سامی؟ حدیف؟ مرسا؟ من خوبم، گوشم حساسیت شده گوشت حساسیت شده؟ پوشید. هم پوشیده. بمیرم دیگه. سعید خوبی. الی سرما خورده آخ آخ آخ ببین این مسئولیت رسانه ای این مسئولیت, ببه. ببه این مسئولیت, ای. این مسئولیت کاری منو کشته به خدا نگو نگو هیچی نگو دمتون گرم همه آماده پر انرژی با شما ایم برو به.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 تشویش از عمومی بشیم و تقلب انتخاباتی میکنیم تازه اگه لازم شد به چند تا سفارتخونه هم حمله میکنیم کلن هر چیز دیگه یه که داریم رو میکنیم کلن آقا این هفته از خون جلو ششامونو گرفته میخواییم بهتر کنیم ها؟ شما بیاید با ما باشید بلکه یه ما کنترل کنید ما غیر قابل کنترولیم این هفته برو بریم شهر روزها بر بچا همجوری دونه دونه دونه سرما می خورن تو سرما خوردی بهتر شدی سعید؟ من امروز بترم بهتری آره،, آره آره خلاصه اما امروز دوستان سعید رو میخوایم به عنوان کارشناس هواشناسی برنامه ما منصوب کنیم بعدی. آب و هوا رو بسپوریم دست سعید به به اینجوری یعنی هوا دیگه مسئول داره دیگه به قول امام هر چی می بر سر آب و هوا داد بزنید بیایید در سر سعید بزنید ای بابا آره باشه جا من گفته باشم فقط قرار گزارش کنم و هیچ مسئولیتی رو نمیپذیرم یعنی تعیین نمیکنم آب هو رو نطور بیا تعیین کن آب آقا من نمیدونم دیگه من مدت ها دنبال این بودم آب هو رو بندازم گردن. یکی توپی شدی واقع. الان گوش کن به حرفای این شنامندمون اول از اهواز حسی الان میدونی کجام هی میگه هوا خوبه هوا اونجا سرد هوا اینجا گرمه حالا من یادآورانه محفوظم 23 درجه است خاک داره از افتمون میباره خدا این گرما و این خاک دوباره برگشت اینجا لذت ببرین از زندگی اونجا بابا جان لذت به در آره شما تحت آره شما ممنونم بفرمون سعید پاسبخت رو بشه. بله خیلی ممنون از تماستون ما تسریفانه این روزا تو جنوب و غرب ایران به خاطر وزش باد ما پدیده گرد و غبار یا همون ریزگرد ها رو داریم که تا فردا پس فردا بیشتر مناطق جنوب و غرب ایران رو در بر میگیره به همین دلیل به کسایی که بیماری تنفسی دارند، توصیه شده که این روزا تا جایی که میتونن از خونه بیرون نرن به هر حال مهم. امیدواریم این گرد و غبارها هم از آسمون شهرهای غربی و جنوبی کشورمون و هم از آسمون سیاست ایران یه روزی برای همیشه بره تا بشه با خیال راحت از هوای آزاد استفاده کرد ممیدواریم. تا اون روز سعی کنید توصیه های منی رو جدی بگیرید که خدای نکرده دوچار مشکل نشید بله خیلی ممنونم غیر از آلودگی و گرد و غبار و اینها دیگه چی آوه هوا کلا در چه حاله گرم شده سرد شده چه خبره؟ اونم میگم بهت فرشی جان ولی قبلش این تلفن رو گوش کنیم. گوش کنیم سلام از لس آنجلس تماس میگیرم هوا اینجا الان منفی 92 درجه است فیلز لایک منفی 954 درجه اوه اوه ار چیه حالا مثلا آی جنتی پراید دست دو سوار بشه و خونش خجد و گلی باشه مشکلی نیست ولی ما اگه اینجا هوامون منفی فلان باشه مشکل داره نه اینجوریه هوای شما منفی فلان بودن اون منفی 92 درجه حالا باور میکنیم چون تر از دمای صفر مطلق که منفی 273 درجه است ولی اون فیلز لایکش آقا ما نمیتونیم باور کنیم دیگه میرا شوخی کردن البته دوست بله تازه هوا رو باقای جنتی هم دادن که خب با مزه بود در نام خودش اما فرشی جان این روزا هوای ایران اونقدر گرم شده که بچه ها تو ایران یاد روزای آخر اسفند و دمه اید افتادن بحبه. کلن یه جورای همه فاز اید گرفتن که خب خیلی خوبه بحبه. احتمالا بحبه. درختها هم گوله این هوا رو خوردن که تو خیلی از شهرهای ایران جوانه زدن یا شکوفه دادن بعید زمستون دیگه زوری براش مونده باشه که درخت رو از شکوفه دادن بتونه پشیمون بکنه بله خیلی ممنون از آب و هوا و حالا هوای ایدانه ایران گفت برامون سعید دیگه خیلی نمونده دیگه دیگه الان امروز اول اسفند ها اولین روز از آخرین ماه سال آقا چشم هم میزنی میگذره؟ امروز هم که برنامه 986 شیشه و دیگه 14 تا برنامه دیگه ما رفتیم. بای بای ما رفتیم. نه رأی بدید نه تعریبش کنید.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 Oh yes. oh yes. خانوما، آقای اون، دختر خانوما، آقا پسر هفته پیش شبکه یک از آقای حسام آشنا که مشاور آقای روحانی هستن و آقای سفار هرندی به نمایندگی از دلواپسان دعوت کرده بود که برای بررسی پدیده نفوذ توی یه تلویزیونی شرکت کنند.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 نفوذ به تراشه و بعد توجه توجه و تمرکز همه رو و همه انرژی خودش رو صرف حل کردن اون مشکل جدید بکنه. خلاصه توی برنامه زنده ایشون زدن زیر دفتر دستک که معظمله که بابا جمش کن آخیش نفوز نفوذو دیگه به خودم اون قدم دیگه تحفه نیستیم حالا کل دنیا حسادتو نفوذ به ما رو داشته باشن. حتی ایشون خب به این صراحت این حرفا رو نزدن یا مقدار در لفافه فرمودن ولی خب همین تو لفافه‌ش هم خودش حرکتی بود در نوع خودش. دننم براتون تای میشه. اصلا نونام سر میره. سارا کارامو از صدای چرا گوش میکنیم. از خواهر مشکل گوشام خدا <تصفيق> بله سلام علیکم خواهر خواهر مشکل گوشای خودمون بودن و برادر مشکل گوشاری که میشناسین ایشون مثل خواهر خواهر مشکل گوشا بودن لطف کردین تماس گرفتین البته فکر کنم مشکل فهم ناراحت بشه بالاخره روی اهل بیت حساسیت ویژه‌ای دارن دیگه این دوستان. امیدوارم مشکل پیش نیاد متشکرم از تماست. همون جور که گفتیم این هفته میخوایم بریم سراغ انتخابات و یه مقدار خط و خطوط بدیم به مردم که یه جوری بلکه بتونیم مهره های استکباری خودمونو به فستیم برن تو مجلس بله دی کاری که از دستمون برمیاد دیگه دیگه یه که به هفته همون گذاشتن جیرخار هر حال به خصوص آقا مجلس خبرگان خیلی مهمتره ما چیمون از این رسانه انگلیسی کمتره؟ رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران مردم تهران دستور عمل میده به فلانی رعی بدید به فلانی رعی ندی بله حالا اینشالله آقا تو سوهرانی بعدیش حالا یه یادی هم از پس فردا بکنه میخوایم امروز بریم سراغ شرا نگهبان و کمی در مورد جایگاه و نقش این شرا توی انتخابات صحبت کنیم پس همین اول کار یک سلامانه علیه کم رحمت الله و بررق ها مخصوص شورا نگهبان پسند خیلی اینجوری ارز می کنیمیم خدمت همه اعزانانی که در شررا نگهبان وظیفه سنگین رد صلاحیت ها رو به عهده دارن و با این حجم از رد صلاحیت میتونن برن و رکورد رد صلاحیت و توی گینس به خودشون ثبت کنن واقعا خدا قبط خسته نباشین همگی خیلی وقتا تو دلم آشوبه خیلی وقته من همه عشقم گلینم توی این شبا هوا سنگینه تا خود صبح خواب بد نبینم چرخ زندگی به کام ما نگرشت هر دومون هم زده ما تومی مجوونی سوندی ما یه عمری بده کار غبی من از این این هفته بدون استفاده از فوش داد و بیداد و باقی الفاظ زننده لطفاً به ما بگید اگه تو انتخابات شرکت می‌کنید دلیلش چیه و اگه نمی‌کنید چرا آیا شرکت تو انتخابات رو یک وظیفه می‌دونید یا اینکه معتقدید اون وظیفه رو لولو ورد به طور کلی ما عاشق اونایی هستیم که عقیده‌شون رو میگن بدون اینکه به مخالفینشون فوش بدن امروز میخوایم بریم سراغ شورای نگهبان و انتخابات 94 تو که دستت به رد صلاحیت آشناس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 جونو بیا بیا بیا آها همینه احبه. آقا سال تموم شده اول اسفنده اه اه اه اه نگاه کن خدا چقدر زود تموم شد همه چی گذشت ای بابا رادیو پسفردان داره تموم میشه آخ آخ آخ, آخ. 986 ایم الان 14 تا برنام ای بابا هیچی هیچی همین فقط همین رو بگم که بودم خونه مقام معنظم رهبری دیدم آقا داره خون گریه میکنه <تصفيق> گفتم آقا جون مگه جی شده گفت مگه نمیبینی مردم تهران عظم کردن که بیان پای صدقا غیره اونم میلیونی میخون بیان گفتم آقا این که خوبه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 خیلی ممنونم بله دیگه واقعا امثال آقای جنتی و مسبان نباشن توی خبرگان اصلا دیگه خبرگان لطف و صفایی نداره که ولی خب جنتی یه چیزی دیگه است بله خیلی ممنونم به خاطر این روزه انتخاباتیتون لطف کرد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 همون که گفتیم از زمان سبتنام کاندیداها ها تا موقعی که نتیجه انتخابات شرای نگهبان اعلام میشه نفس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 ماشین مشتی ممدلی ارزونو بیمو اتلی ماشین مشتی ممدلی دلی بغداره نه ماشین کارتون مارتولا که انداخته صندوق چیه هستن اینو البته فضولی نماشه ما از اوناش نیست زونه پبلیغوت او برای انتخابات اینو خبه ما می کل شهر رو چی؟ دوباره برداشته این اکسفنگت های این عتیقم عتیقا یعنی شما چیزی خودت کاندید ماندیدی؟ نه؟ چی پس؟ حال مدیرش تابخونهی سفارش مفارشان رو باستواری تحویل دید ایوهل ما میگم این انتخابات و انتخابات ها چی؟ به زرر هر کی باشه چی؟ به سود شما هستا نه؟ کارکاساوی سکه و ایوهل داش میگم شما تو كار تبلیغ مبلیغی به این كاندیداها بگو آخه با این فیگورهای مسخره چی میگیرن واس این عکساشون آخه یارو چی تو محل ما تبلیغ کرده بود صحبی داشتم میمادم تی چی... فیگور گرفته بود پشتبازو نشون داده بود اینهون یکی یکنی صیداش شما میخوای بری مجلس میخوای بری مجلس میخای رو ملت بدید زام زمانی بدنسازی که نمیخوای برید او داش میخندی؟ باد بهش بگی میخنده یا سر خط بطه ها و ها تو گوشیشون شونید اکسه رو داشتن ببین به مولا به مولا داشتی داشت با تادوره غیر میداد یعنی چی آقه اینوان نه باز میخنده بابا مجلس میخوان برن دیگه رقص خونه نیست چه تو خارج مارزش هم این دوری نیست دیگه بلا زونه بالا البته واسه رعی رفتنه دیگه اینا میان مره رایتی. هر کاری میکنن بعد که رایی گرفتنتی تی آزی آزی مکه داش <تصفيق> میگم شما که تابخونه داری ترا یه وانت, وانت ردیف نمیکنی خب خوب سخت این زوری که... آ داری خراب شده زونه با میخوایین کارتون مارتون ها رو لتوندیم خودم بیام کابوت بزنم بلا تی سسوت راش مندازم فنی منی ردیف و راننده بیامون گو باینامه که بینالا <تصفيق> زونه من تا رفلک و پولشو میگیریم ازت دیگه شما هم که تی الان مایه پایی ردیفه ای ایو روشه زونت بابا کار میکنی زحمت میشه ده تره دیگه رو کرتم اونایی که مفت بخورن میترخنم اینشالله چی از سششون بزنه بیرون سه ترافیکی هم اصله از, از سبب بابا بندازیم از این کوسه پس کوتس ها بریم که دیر شد بابا خیلی عاشق شدم به خبر یه دل دارم دو دل بر این یکی از این بهتر کار دل پرنگ تر اقلی قلب مهربون داره دو گومی صرفت داره این یکی مهرب و فاسو فرشه. اون یکی یه بار کنک سوارشه دلم میخواد ثباب کنم بگو خود اونو جواب کنم بدیولت دو بومی ای یار میخوام که باشه خوش قلب و مهربون بشی تو کارش باشی درست شخبربن بشی وا که دیگه خسته شدم نمیدونم چیکار کنم نمیدونم کین میون چه بله سوار کنه میخواستم بگم که به اینا رأی ندید اگر به اینا بدید مردم به ایران خیانت کردین و به بچه های خودتون خیانت کردید توی این سی و سال این رژیم هیچ کاری برای شما نکرده به جز ظلم پس به اینا رأی ندید و میخوام به آقای روحانی بگم وقتی که آقا خامنه ای به مردم ایران زخم میزنه یکی مثل آقای خاتمی رو میاره مثل چسب زخم استفاده میکنه ازش و بعد وقتی کارش نمو شد بین چه بلایی به سرش میاره همین کار رو به تو خواهد کرد. آقای روحانی حواست باشه پشت مردم باش حتی اقل بله خیلی ممنونم از نظرتون برایشون معتقد بودن رعی بهتره و آدمایی مثل آقای خاتمی چسب زخم و کلان چسب زخم یعنی نمیخوایم. همچون خونی مالی بمونیم بدون پانسما خوش بشیم خیلی ممنونم از تماس شما و از نظرتون این هفته از شما سوال کردیم که به ما بگید بدون استفاده از فوش البته بدون استفاده از دادو بیداد مثل همین دوستمون که نظرشون رو گفتن نظرشون رو گفتن دیگه بدون فوش دادو بیداد و باقی الفاظه زننده لطفاً به ما بگید اگه تو انتخابات شرکت می کنید دلیلش چیه و اگه نمی کنید چرا و آیا بگید شرکت تو انتخابات رو یک وظیفه می دونید یا اینکه دون رو اون و و اول برنامه هم گفتم ما عاشق اونایی هستیم و اون تلفونایی هستیم و اون دوستانی هستیم که ما ما تماس میگیرن و رو میگن بدون اینکه به مخالفینشون فحش بدن تو فیسبوک یکی به من گفته فرسی جون وای به حال تایی رای بدی ها من چی میشم مگه رای بدم؟ چیکار به من دارین آخه اصلا به من چه؟ بابا حضورشون به شهر نگه همان سر من خالی میکنن؟ عجابه علی جان چه خبر دیگه از بر ها فیسبوک اینستاگرام باقیه سوشال مدیا بله, بله سلام سلام علیکم اوم صدای سرمای خورده بله خیلی خورد بهتر شده انا فکر میکنم آره بهتره سعی کن همیشه سرمای بخوریم همیشه سرما بخورم والا امروز رکس اعلام موضوع هفته در اینستاگرام واسه خیلی زیادی شده بود یه سری طبقه معمول موافق رأی دادن بودن عده‌ای هم مخالف بودن مهم. مثلا آقای سحن کامنت داده بودن که به جای نفرین به تاریکی چراغی روشن میکنم و رأی میدم آقای محسن در جوابشون نوشته بودن که چراغ رو خاموش میکنم و میرم میخوابم نفرین به تاریکی رای نمیدم. حالا این دو تا کامنت اولیه بود که خیلی درست حسابی بود در واقع بعد کلی بحث شده بود، آخرش هم به باد و بیراه خط شده بود. تنها کامنتی هم که میتونم بدم در مورد این قضیه اینه که بالاخره همه ما عقاید خودمون رو داریم چه کسایی که اعتقادشونی که باید رای بدم و چه کسایی که میگن نباید رای داد. همه گی اما اگه واقعا برای بهتر شدن شرایط تلاشی هم میکنیم به نظر اولین و بزرگترین قدم اینه که به نظرات مخالفمون هم احترام بذاریم بله بعد دنبال قدمای بلندتر ت... بلن بلن بریم بله اما متاسفانه ملت غیور ما معملا راحتترین کار انتخاب میکنم اونم بعد و بیرا گفتن به کسایی که نظر مخالف نظر ما رو دارن حالا میخواد انتخابات باشه میخواد استیک باشه فرقی به بله متاسفانه بله و... اینا تو اینستاگرام بود که گفتی بله این جنگ و ها بله. دیگه چی؟ آقای اممیر پاکس دا زیر عکس ساپورتی که گذاشته بودیم هفته پیش در فیسبوک نوشته بودن که چند وقت دلمون هوای یک روز بارونی یا برفی رو داره ولی همش تسین این بانوان محترمه که ساپورت می پووشن مادراتون چند روز نپوشیم بذاین یه برف درست حسابی یا بارون نمنم رمانتیک مدل سیاشقا بهشی بیاد و نه هر چی دوست داشتیم بپوشیم ما پشتدونیم ول نپوشیم دیگه آقاه تو سرماکی ساپورت می دیگه دوست دارم خب دیگه حالا چه کاری چه کار داریم ما دیگه دوست دارم میپوشن آقای مهران کرمانیان در فیسبوک نوشته بودن که خواهرم کارتون یخچال نشانهی دست نخوردگی توست همه یه چیزهایی با ارزش کارتون دارن بله و اینجا میخوام همه ای کارتون تهیه ببینن دیگه همون مثل تو ماه پوست شکلات و اینا بله دقیقا و خانم مینا عسکری نوشته بودن برامون که فرشته منافی و تیم همکارانش برنامه زنده رادیو پاسورده قدرتمند و بدون نقص اجرا می شود برای شنونده استرسی در بر ندارد و بسیار عادی تا انتها هدایت می شود از خانم مینا عسکری باد کردیم دیگه بله. ما. همه تا شکر تشکر, تشکر کنی. همه تشکر خانم مینا از همه تشکر می کنیم بله. از شما تشکر همه یعنی از شما تشکر می کور بله. دیگه... ارتباطی. بله. هم هستش که تلفن های برنامه هست دو صف چهار و بیست سه دو چهار و صد و سه 23420 226 21 79 31 39 ببخشید ببخش مغاز خواهی میکنم بله 23420 226 21 79 39 و تلگرام هم هستش که اتسان پسورد و گرام راحتی یعنی میتونن به ات پسورد و گرام برامون بله. اکس, اکس و, بفرستن. و ویدیو و... صدا و بفرستن صدا بله. بفرستن هر چیزی که دوست دوستارم میتونن بفرستن ما واقعا چک میکنیم واقعا چک میکنین واقعاً. واقعا چک میکنین زنگ نزنین فقط, فقط نزنین امون پسوردگرام بفرستین کافیه بله ممنون الیجان فدای شما مرسی اور انسودا تو باشی چرا بهش اما اون کاندیداهایی که از فیلتر شورای نگهبان رد میشن آقایون ها دختر خانم ها آقا پسرها به این معنی نیست که چون مرحله اول شورای نگهبان تاییدشون کرده ای تو مرحله دوم ما رأی بدیم طرف میتونه مثلا بره مجلس شورای جمهور بشه یا هر چی تو مرحله شمارش آرام بالاخره هایی برای نظارت و ساماندهی آرا مردم وجود داره که دیگه سیستم انتخابات از اون حالت هردم بیل و هر کی بیشتر رأی آورد بره مجلس و اینا خارج بشه دیگه یعنی اگه قرار باشه شاخص نظام یا اونایی که نظر رهبری بهشون نزدیکتر رأی نیارن جاشون مثلا دو نفر دیگه که حالا شورای نگهبان بهشون لطف کرده و حالا تایید صلاحیتشون کرده اینا برام مجلس که نمیشه که اینجا هم عزیزانی هستن که احساس تکلیف کرده و وارد عمل میشن و متخصص و ای که در زمینه اعداد و ارقام دارن کاری میکنن که بالاخره خب شاخص نظام پشت در نمونن بیچارها برن داخل نمونهشم خواهم این چند دوره پیش انتخابات مجلس که آقای حداد آدل توی تهران رعی نیاور یادتونه و بعد از اینکه حالا چهار بار صندوقا رو باز بازشماری کردن و هفتصد هزار تا رعی و باطل الام کردن بالاخره ایشون شکر خدا به زور رعی آور تونست بره مجلس نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن کاملان ملک موتی سلام بگو ببینیم چه خبرها بوده سلام فارسی جان باید بگم این روزه سینمای ایران بیشتر از این که توی ایران به چشم بیاد توی جشنوارهای فیلم خارجی بیشتر داره خود نمایی میکنه مثلاً فستیوال فیلم بلین که این روزه در حال برگزاری حالا چند زاینده خبرش بیشتر میاد امروزو خبر اومده بود که فیلم بوفالو ساخته کاوه سرجادی حسینی که این روزه تو ایران در حال نمایش در بخش رقابتی دو تا جشنواره مهم سینمایی قبول شده یکی فستیوال فیلم تیبران که تو سانفرانسیسکو از هشتام تا 15 دوازده برگزار میشه دلی. و دیواله فیلم جاده ابریشم که 18 تا 22 مارچ یا مارس شما توی دوبلین برگزار میشه اگه موافق باشی بخشی از هزینه فیلم بوفالو رو با هم بشن. بشنو. تو اونو بندازی من میندازمت پایین خود میدونی. چیکاری نمیتونی بکن. و نیوختی. مراقب باش. این کوچیک. کوچیکه. همه میخوان از کارم سر در بیارن. چاد کجاست؟ پشت بازار مسافرخونه خونه دیونه یکی فوقش موتور؟ چوکو بابا برای چی دلشوره داری من استیدم اونور خودم بهت خبر میده جات راحته اینجا که خیلی ناجوره میشه الان بریم آدم هر جو زندگی کنه قلق هم اونجوره میگه بخش صدا فیلم بوفالو ساخته کاوه سجادی حسینی رو شنیدیم صدای پرویز پرستویی رو من شناختم بقیه بازیگرای فیلم کیا هستن کامرا دروس پرجرا پرستی بود همینطور سایل گلستانی، هومن سیدی، پانتا، پناهیا بازیگرای اصلی فیلم هستن. کسایی که فیلمو دیدن ازش خیلی تعریف کردن اما متاسفانه در حق این فیلم هم مثل خیلی از فیلما تو ایران جفا شده کلا 3 تا سالون داره برای نمایشه که توی تهران یکی توی رفسنجان یکم تو عراق. همش 3 تا سالون نباش. بله. 3 تا سالون هستن نباشن دوستان. خب خیلی وقت از تئاتر خبر نداشتیم. تعطیلن به سلامتی یا چیه دوستان؟ تأتیل که نیستن اما نمایش پر سر و صدا و عجیب غریبی تو این چمه روی صحنه نرفته اما این روزه نمایش چمدان نوشته و کار فرهاد آیش تو سالن اصلی تاتیشر در حال اجراس که تقویم خبری رسیده پرفروش‌ترین نمایش امسال تا اینجا البته تا حالا مونده چند تا اجرای دیگه به غیر خدا آیش موعد تماسبی شقایق فرهانی، رامین ناصر نسیم، بهناز نازی و شبنم فرشادی هم بازیگرای دیگه نمایشن بسیار خب ممنونم ازت کامران عزیز با تا فردا خدافزی می کنیم این نمایش چمدان یه ترانه هم داره این ترانه تیتراجشه هم تیزرشه هم توی خود کار خود کار خوده. پخش میشه این ترانه این چمدان هم با هم به اتفاق می با کامران خدافزی می کنیم تا فردا خدا نگهدار یه روز پول برزید توش هست میکنی، یه روز دلشو باره کاغذ میکنی. چمدون دون همیشه محرم رازه با این که یه وقت تاسید وقتی که رو دلش رازه و رمزه نگهش میداره بی اشته و غمزه چه پارچهید چه بلزید چه ترمید به وقتش میده به هر گرمید چی می کاری از یه لپیس دوی بمیاد و شادیا چم که با تو همه چون که میاد <سؤال> میونه میدون میدوه توی رگای زندگیمون خون تو هیجان و <PA> ترس و تو قهر آشدی حتما پیشه یه چمدون داشتی چمه که نباشه همه چی تخته زندگی نواخته خیلی سخته اون داره با خودش یه دنیا احساس با چمدون دون میشه لحظه هامون از یه توی غمیات و شادیا چمه که با تو همه چور را ای با سلام 21.30 شنبه شب را ضمن ابراز و تحصف از تعطیل شدن مدارس نه شهر استان خوزستان به دلیل آولوگی هوا با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماویم نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ورود دادگاه بابک زنجانی به پرونده دوازده مدیر احمدی نجاب که به پرونده وی مرتبط بودند و نظر کاشناسان که با خوب همین همینجوری بخوام ورود کنن که آخرش میرسه به خودشون فیلتر و رفع فیلتر ورژن تحت وب پیام تلگرام در عرض چند ساعت امروز و نظر فعالان عرضه فیلتر که وقت فکر نکنید این کارا به خاطر انتخابات لنگر کشتی بود گیر کرده بود به تلگرام و انتخاب رسمی ستاد انتخابات از صدا و سیما به دلیل پخش اطلاعیه های جعلی و از سوال کارشناسان که با عمقی صدا و سیما چیز غیر جلی پخش میکنی که حالا شما شاکی شدید؟ مهمترین سر خطها یه خبری صابت گذشته را شامل میشدند اینک مشروع خبرها با همکارم بلی بلی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 بله همانطور که در خبرهای روزهای گذشته شنیدیم دالتون ها یا همون سبرابدر معروف جیبور و کفزن پای تخت برای هجدهمین بار در حین جیبوری دستگیر شدن در همین رابطه ای داریم با جناب آقای جناب سرهنگ کاشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی دالتونیاتی برنامه کاماله و در جریان جزیات بیشتری از این پرونده قرار بود. بله،, بله. بله منم سلام عرض می کنم. ای پی روزیه بزرگا بله. به مللتی شریف ایران و همکارانم هم در نیروی انتظامی تبریک و تهنیحات می کنم. ای, ای سرنگ بهمن بله. تموم شده پیروزی بزرگ چیه دیگه؟ ب... نه خیر همین دستگیر شدن این برادرانی دالتونا میگم. ها، ها، خسی نباشه. بگم همکارا شروع ورزشکاران دلاوران اینا بذارم بر نه، نه خیر آقا نیازی نیست ما وظیفمون رو انجام دادیم هر وا چی نباشید واقعا. مثلا یکم بله. حالا از اینا برامون بگوی دیگه کی هستن، چیکارن، چند سالشون چیه، چجوری؟ ببینید اینا سه تا برادرن که بزرگترینشون جفرست است، وسطی احمدا، کوچیکم جواده. یعنی اینا واقعا با هم برادرن سر ها بله متاسفانه برادرن. بجا. ولی خب ما این سری اول تونسیم جعفر یعنی برادر بازرگرا بگیریم ایشون هیف ده بار قبلا دست گیر شده بوده.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 هفت سال بله اینجوری باشه که این از زایشگاه آوردان دم بله. زندان تعویض دادن رفتن چه بابا بعد بله میگم متاسفانه ایشو خیلی سابقه دارم و بعد... سرطان یعنی بله. زنداناتون هم عالیه نا خیلی صبور بخشن بله. شبون میمخت تعویض میگیرن اصغر نز... گافگوش تعویض میدنه اولا زندانا مال سیستم قضایی بله. ام بعدم این که ما که نمیتونیم آدمو راه عوض کنیم که عزیزم من... آ طرف میره زندان بعد به مرخصی میگیره میاد پروژه های خلاف نامون بله. موندهشو انجام میده برمیگرده این شد کار اخر های. ب میبینید قانون اسقا کاریش نمیشد کرد. این... بله قانون دیگه. بله. سران یعنی من فکر کنم این جعفر هنوز پاش نرسیده به زندان رفیقا رو جمع میکنه تو سلولش میگه اول اهنگمو بذارید که آهنگ آه چی چی اهنگ آه چی چی است آقا جون آه... نمیذاره از این کار اخر. چی میگه شما؟ الان من هم کارام میخوام اون اهنگ رو بذارن تا متوجب بشه آهنگ چی؟ همکارای گرامی و آهنگ این آقا جعفر رو بزاری. بله. بیا آها <تصفيق> چ... بای <باید. تصفيق> یعنی چیچی تو چی وای عزیز بعد ما پلیس است هستی نه وای این گیل شما میذاری تو زشته آقا با آقا برای رسانه من متاسفم رنگ بیه رد چی ما گل میذاریم علان جعفر هم دوباره داره وسایلش جمع میکنی گود وایپسی میگیری بیاد بیرون لطفاً شامل توجهی شما شب دیگر رنگی دیگر و جعفری دیگر خداو دیگر با کو دوما روان کو زشته سی مشکل متوقف اش کن یا باقیلش سرانی بیا بیا زشن بیا. زشن چه چه بیا بیا هم یه دقصه اصلاهی بکنی بیا ها بیا بفان های افتسان های بود سینال بیدن زود حالا تو موها خیلی خفا خیلی حسن خود باشه نمیدونم سی شد یه در از اون در یه خانوم اومد یه از زفر خوشش اومد بعد که اومد تلوتاد گفت بوشت در پیسته بابا بو ال چون بابا بو اعبته دوستالو نیاورداشولم بیبری نه. سهیپ هت ریکوت. جگوت بایپارتیه دافره. جگوت بایپارتیه دافره. جگوت امشب دفر کمچینه حالا امشب من شدم دیده ولی دفر حالا همه میدن شماره از گل چیزی نزد و خماره آخره شب همه زدن تجرید دفر بگوینم سیرا پچرید مثل این چه به هم زده آسلام شکر ده انتخاباته چرا دیرگاه تودیا برسی میکنید چرا نگاه آهاد مردم ایران نبینید آهاد مردم ایران بخارش شرکت در انتخابات هستم تشکر می کنیم از شما رنجورم کد آرس. ما هم از شما تشکر می کنیم. البته اینکه حالا آهاد مردم ایران دقیقاً چیکار میکنن خب ما که نمیتونیم بگیم نمیشم چیزی رو به حرف اینی که ما نظر خودمونو میگیم، شما هم نظر خودتونو بگین. ممنون از تماسید.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 و به کسانی نام میبرند میگن به اونا ری بدن اوه اوه اوه چی شود استوان های نظام منظورش همون مسلح های اتطول جنت های طول و مثب یزدی ها یعنی مادر نظرایی کسی که بخواد قاه رفتن استوان های نظام به خبرگان رو بگیره ولی خودمونیم حالا اگه انقدر اینا استوانن اصلا چرا گیری میکنن خب بفرستینشون برن خبرگان دیگه جالبه ها گوش نظامش مردم عزیز و شریف ما به توصیه مقام معظم رهبری، به کسانی رای میدهند که اونا میگن رای ندید و به کسانی رای نمیدهند که اونا میگویند رای بدهید. خب به سلامتی نتیجه انتخابات خبرگان لاغر توی تهران که مشخص شد جنس این پیش بینی دقیقا از همون پیش بینی های بیصدای بهمنی بود دیگه یعنی ردخور نداره یک درصد فکر کن مردم شریف و عزیز و ولایتمدار ایران به توصیه مقام معظم رهبری گوش ندن به جای رای دادن به این سه استوانه نظام برای آن استوانهای بیبیز رای بدن. والا اصلا مگه در جمهوری اسلامی چنین اتفاقی ممکنه؟ وقتی پشت تیری بونه نماز جمعه میگن و آقا هم قبلا گفته بود که ملت غیور و شجا فلان کار میکنه میکنن حتما میکنن دیگه ردخور نداره حالا سب کنین نتایج انتخابات و خودتون ببینین استوانه نظام اما شوخی نیستن که فریورز غریب سلام چه خبر مهم تو این چربیز گذشته؟ سلام سلام به همگی فرشید جان از آخر شروع میکنم از امروز یعنی آقای حمید رسایی مجلس امروز دوباره بحث فساد تو فوتبال رو پیش کشیده و به نوشته تابناک علیه پور رو نردش گفته و همچنین علیه کفاشیان رو هم به عنوان متهم رادیس اول پرونده فساد در فوتبال معرفی کرده مثل دو هفته پیش که عجب. رئیس کمیسیون اصل 90 هم همین حرف زده بود اگه یادت باشه عجب. این پرونده فساد در فوتبال هم کم کم داره به یه سریال دنباله‌دار تبدیل میشه درسته آره واقعا فرشید جان مردم و هوادارا هم گیش شدن که واقعا حق با چیه دیروز یه گزارش از تیما پخش شد که چند تا از مربیان لیگ یکی هم در مورد فساد تو فوتبال حرف زدن اگه اجازه بدیم و حرفای آقای مرزوان سر تیم پیکان در این باره دوش بدیم اعتقاد مردم نسبت به این مسئله که تصمیماتی گرفته میشه برای اینکه که تیما نتیجه بگیرن بیشتر داخل زمین نیست مردم ما این اعتقاد رو واقعا از دست دادن ما باید چهامت اینو داشته باشیم با این فساد مبارزه جدی کنیم هم توی لیگ برتر هم توی لیگ یک و توی تمام جامعه همون بله گلم معتقدم فوتبال ایران فاسده انگار منتها نقش کاشف فساد رو وقتی قاجا رسایی رساییوام میکنه آدم یه جوری میشه حالش دیگه حالا بگذریم <تصفيق> فریدورز یه خبر غیر فوتبالی هم بده بریم تا فردا به بهانه قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران فرشی تو آسیا که دو روز پیش رقم خورد با کسب چهار تا مدال طلا البته امروز هم آزادکارا سه تا طلا گرفتن محمد بنام سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هرسه با مزه زده در مورد این مدال های طلا گفته هی میگن طلا واسه مرد حرومه اما هی از من طلا میخواد بله حالا ما تفسره میذاریم که طلا برای مرد کشتگیر ثواب هم داره ایشالا کشتگیرامون هم هی ثواب کنند پشت هم ممنونم ازت فری برز غریب تا فردا تا فردا خدا نگهدار. خب این موزیکی که میشنوید موزیک برنامه استیکه منطبت بگم که از امشب در اجای برنامه استیک تغییر ایجاد شده و اون این که پروڈیوسرهای برنامه فقط تو برنامه سشم به شب حضور پیدا میکنن و بهترین کارهای شما رو به چالش میکشن امروزم فرصت نداریم منطب خیلی تلفن داشتیم راجب برنامه استیک فرصت نمیکنیم که تلفناتون رو پخش کنیم امیدوارم که همچنان همطور که با پسوردگرام برای ما عکس و ویدئو و صدا میفرستید و همینطور به تلفن‌های برنامه و از طریق اپلیکیشن همچنان با لحجه های قشنگتون غذاهای محلی رو با طرز تحییش برای ما معرفی می‌کنید ادامه بدید به این کار و منتظر باشید تا سشنبه در برنامه استیک واقعی با پرویدیوسرهای ما همراه بشید ببینیم که شف یا پروژیسر های ما نظرشون راجع به های شما چیه یادتون نره برای برنامه استیک طرز تهیه غذاهای محلی رو با لحجه محلی خودتون برامون بفرستید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 ماشالله آج آقا جنتی که به این جوونی به این رعنایی هستن از این به بدلیست علاقه مندان بدین دستشون خودش خط خطیش کنه هر کی رو میخواد تایید کنه هرکی هم نمیخواد بفرست لهای دیگه یعنی اولا اینجوری شده که تو خودش شورای نگهبانم یه شورای نگهبان دیگه درست شده که از شورای نگهبان اولی نگهبانترم هست خیلی دست به خدا خیلی والا به نظرم یا آقایون خیلی سوسولن که هی غور میزنن از رد صلاحیت شدنشون یا ما خانوما دیگه عادت کردیم به رد صلاحیت شدن. زن و مرد نشم میکنم چون هست دیگه. اصلا دیدین وقتی اعتراضات رسانه‌ای به رد ها اینم بگن که چرا یکی به صرف جنسیتش رد شده؟ نه دیگه. اون وقت این دوست من سمیه هنوزم فکر میکنه رد صلاحیتش کردن چون تو فلان مهمونی جوکه جنتی گفته بوده یا چون برای حجابش تذکر گرفته بوده از گشت ارشاد.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 زد دیلیتش کرد که مبادا این بشه دلیل رد سلاحیت چهار سال بعدش همچین دوستای آینده نگری دارم من بیشون. روزنامه آرمان امروز امروز تیتر زده بود که رقابت هفتاد اصلاح طلب در برابر سه هزار اصولگران دو نفر هم از اصلاح طلب و تایت طلایت می کردم شد هفت2 نفر قشن یا دوبار بقعی کرد بود روزنامه اعتماد به نقل عضلی متحری نامزد اصولگرای لیست اصلاح طلببان تیتر زده بود که اگر رفع حصر می خواهید پای صندوق بیایید رفع هست چیه؟ ما سلامتی رو میخوایم چه خبرها؟ خوش میگذره تو لیست اصلاح طلبا برنامه امشب هم تموم شد شاعر میگه در فاصله دیواری میتنم از تنهایی از حرفهای نگفته از بغزهای پنهان در این صدا شاید این شب بی ستاره بی محتاب نهایت ظلمت نباشد شاید بیایی با چراغی در دست تا فرو بریزند تمام مرزهای زندان و آزادی تا فرو بریزد این تاریکی مسود همه از دور میشنیدم بغز دریا تو صدامه همشون به هم می گفتفتن همه دنیا تو نگاهام همه درها آشونو بستن درها آشونو موندم زیر با